جلسه 41 قواعد فقه سیاست قواعد مرود به تزاهوم مساله 141401 مؤسس حوضوی امام رزا علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله نام و نبی قاسم محمد و حالا اهل بیت تاهرین المعصومین سی موبعیتالنا فالعرادین روحی بردن خلال عالمین علیه الفدا با تحکل بر خدای متعال و تحصیل از رامبر گرامین و اهل بیت ادهار علیه السلام بحثمون رو عباس بکنم این که خداوند متعال نتوفیقت همه عزیزان رو از زخم بهفاید و از برکات این ماه مهم ماه قربانیات و ماه قرآن همه ما بهرهمند بشیم و همه دوستان از کمال بهرهمندی رو پیدا کنیم. در بحثی که ما در جلسات آخری داشتیم داشتیم و با مربوط به اهم و مهم رو پیگیری میکردیم و برخلاف تعبیر رایج که معمولا گفته میشه قاعده اهم و مهم تعبیر ای به جای این مقوله ما به کار بردیم و اون تعبیر رو در واقع تعمیم دادیم گفتیم موارد قواعد مربوط به اعم و مهم. به جای اینکه تعمیر قاعده اعم و مهم رو داشته باشیم، قواعد مربوط به اعم و مهم رو عرض کردیم و اشاره کردیم که می توانیم رو سه دسته بکنیم. البته خود این سه دسته کردن رو ما به دو شکل می توانیم مطرح کنیم. قواعد تضاحم واجب با واجب قبائد مربوط به تضاهم حرام با حرام و قبائد تضاهم واجب و حرام این یکی گلگوست الگوی دوم رو بر اساس مسلحت و مفسده مشابه این مطرح کردیم قبائد تضاهم مربوط به تضاهم قوائد مربوط به تضاهم مسلحت با مسلحت قوائد مربوط به تضاهم مقصده با مقصده و دسته سرفون قوائد مربوط به تضاهم مسلحت و مقصده پس این یک الگوی سگانه بود که بر اساس مسلحت مقصده بود که به یک معنا تعبیلش آمتر لحاظ بشه اگر برمدار و حکم بریم واجب واجب حرام حرام واجب و حرام می توانند تضاد پیدا کنند اگر بریم سراغ عالم مسائل و مفاسد مصلحت و مصلحت مقصد و مقصد مصلحت و مقصده می توانند قواعد مربوط به خودش رو داشته باشند پس ما این تعبیر رو گذاشتیم کنار که بگیم قاعده اهم و مهم یا اگر بگیم قاعده طبیعتاً این قاعده یک نوع در واقع تعبیر عام خواهد بود یا بگیم که در واقع قواعده قاعده تقبیم قاعده اهمبر مهم در واقع حاوی قواعد فرعیست این یک تعبیر تعبیر متنردهی رو توان ما به کار ببریم اگر گفتیم قاعده اهم و مهم یا باید بگیم که این تعبیر یه قاعده اصلیه در واقع به مسابقه یک قاعده اصلی ما بگیم و موارد بعدی بشن قواعد فرعی یا اینکه بگیم که قاعده بزرگ در واقع قاعده کلان اینه اون قواعد بعدی حاوی قواعد جزئی تر خواهد بود اینم یک تعبیر دومیه قبیر اول همین بود تقدیم در واقع قواعدی اهم اصلا مستنز در واقع حاوی بیترجهی به دیگر قواعد مرتبط بود قواعد مربوط و حتی متزمن بود قواعد فرعی و جزئی بود یا اینکه اصلا اونا رو ممکنه قاعده فرعی حساب نکنیم قاعده جزئی حساب نکنیم و بگیم تقدیم قواعد اهم بر قواعد مهم اینم یه تعبیر دیگه است خب این حالا باید با بررسی موارد شما ببینید کدام مناسب و به هر حال یه سری قوائد رو می توانیم فرعی حساب کنیم فرعی بودن متزمنه چیه؟ در واقع فرعی بودن متزمنه اینی که برخی قوائد دایره و حیطه محدودتری رو از قاعده اصلی خلاصه متضمن هستند پوشش میدن با این تعبیر میتوانه خوب باشه در واقع یا تعبیر قاعده اصلی بگیم یه سری قواعد فرعی ممکنه می در واقع با کنار هم قرار دادن برخی از قواعد فرعی در واقع به قاعده اصلی راهنمون شویم این بحث تعبیری اما محدود به یک تعبیر نیست هیتر رو هم خلاصه پوشش میده حالا اگر گفتیم قاعده کلی چون این در مثلا بگیم قاعده کلان و قواعد جزئی حالا کلان رو ما در توابیر فقی به کار نوی کلی و جزئی این در واقع مبتنی بر در واقع نسبی بودن قواعد میتوانه خلاصه این تعبیر به کار بره و در واقع مورد اشاره ما اون قاعده آم میست که در این جزئیات هم میان این قاعده جزئی اون قاعده جزئی بخشی از اون قاعده اهمن یعنی پس یه ممکن میگیم یه قاعده اصلی داریم اینا فرعیشه یه ممکن میگیم قاعده کلی داریم اینا جزئیاتشه خب اینها تعبیر مختلفیه اگر تعبیر قاعده کلی یا حالا بگیم تعبیر قاعده کلان رو بگیم به این معنوس که قاعده خلاصه محوری ما قاعده اهم و مهم این متضمن قاعده ای کلیتری که اون موارد که به بحث قاعده کلیتری که شامل موارد جزئی‌تر میشه و اونها مسادق اون خواهند بود شامل در واقع قواعد جزئی تر خواهد بود که در واقع بخشی از مسادق اون قاعده اصلی خواهند بود لذا شاید تعبیر قاعده اصلی بهتر باشه چرا چون بگیم جزئی یعنی اون مصداقاً مصداق خود اون قاعدند در نتیجه در واقع هر کدام از جزئی ها جزئیات به تعبیر فقهی مصداق اون قاعده کلی خواهند بود خب اگر به اون نسبی بودن توجه بکنیم خب نسبی بودن به اون تعبیر قبلی در واقع تناسب بیشتری داره اما اینجا که خود اینها در واقع یک متفاوتی رو به نمایش میذاره که بیانگر مسادیق قاحت بود خب مسادیق اهم و مهم کداما هستن خودم موارد اهم و مهم در واقع مفهوم مستاق با مستاق اهم و مستاق مهم کار داره نه با در واقع با خود قبائد بزا شاید از این جهت در واقع تعبیر قبلی بهتر از این تعبیر باشه یا اگر ما به کار بردیم خلاصه مد نظرمون میتوانه اون باشه تعبیر قاعده اصلی و قاعده فرعی تفریعات بگیم چون که در سایر در واقع در منظومه قوائد فقهی می توان مجموعه ای از قوائد اصلی و قوائدی که تفریع اون قوائده اصلی هستند توانیم پیدا کنیم در اون قوائد تفریع اون قوائد رو در نظر بگیریم خب حالا در بحث مصادیقی که ما اینجا مورد نظر قرار دادیم بحث سه قواعد مربوط به تقدیم برخی از مساله بر برخی مساله دیگه بود خب ما چند مرد رو مورد اشاره قرار دادیم و یه توضیحاتی دموتشون عرض کردیم یکی قاعده تقدیم اسلحه بر ساله منطقه مراد ما چی بود؟ تقدیم در واقع فعل اصلح و فعل صالح بود با اون بحثای انتخاباتی فعلا کار نداریم بحثای گزینشی کار نداشتیم که فاعل اصلح و فاعل صالح نه اینجا بحث اون فعل بود کلن تو این قسمت رو بگفتیم تزاهان فعد و فعل قواعد مرتبطی داشتیم مثلا جمع و بین دو مصلحتن اول من ابتدای حد ما و دو تا مسئله کار داشت تخییر بین دو مصلحت کار داشتیم منتها اینا مرتبط بودن خب یعنی یکی جمع رو میگفت گفت و انجام میدید یکی تخییر خب سید تعبیری هم داشت که گفتیم در واقع برای اینها مثلا تقدیم اوجب بر واجب داشتیم که به اون سیغه تعبیری واجب و واجب پیشتر می کن تقدیم احمل مسلحتین داشتیم که این مفهوم آمرو کار برده بود تقدیم اقوال مسلحتین داشتیم خب یا مثلا بعضی برعکس گفتیم در مسلحت ازعف در مسلحت اقوال خب ما به جای تقدیم اقوال مثلتن بگیم نزهی بل از مقابل اقوال تزهیه میکنیم واروانی میکنیم مثلت از اف رو از این در راقه از اف چند تعبیر دیگه رو هم اینجا به کار بردیم چند قاعده تا به جای تأویر داریم میگیم قاعده قاعده فرعی بگیم گفتیم تقدیم اکبر مثلتن یا تعبیر مقابلش یا زحاب المسلحت سقیرم من عجلت. عجل المسلحت کبیره خب اونجا تو تعبیر قبل گفتیم اول المسلحتن، احمل المسلحتن، اقل خب اینا تعبیر آم بود اینجا در تعبیر کبیر و اکبر و سقیر و اصغر یه مقداری ما با نگاه کمی کار داشتیم لذا یه مقداری میشه بگیم که بیش از اون تعبیر، تفاوت در تعبیره میشه اینجوری سوال کنیم بگیم آقا شما که میخواید اهم ملم... در واقع اهم و مهم بکنید خود این اهم و مهم خیلی کلیه این ما یه مقداری باید جزئی ترش بکنیم ما باید بیایم در واقع نساب به همین اهم بدیم از کجا بفهمیم چه چیزی در واقع خودش اهمه این رو آمدیم چه کار کردیم به عنوان تقدیم اکبر و تأخیر اسخر و سقیر و کبیر اینجا عرض کردیم خود این یک جوری در واقع کردن نساب برای اهمه خود اهم رو چگونه ما تشخیص بدیم؟ عرض کردیم این تعبیره که به کار میبرن ما میتوانیم این رو به عنوان در واقع یه نصاب حساب کنیم. چرا؟ که اون مفهوم اهم یه تعبیر بگیم ارزشی بود یه کیفی بود یا مجموع بود، نتیجه بود اما مفهوم اکبر با کمیت کار داره خودش میتوانه یه جوری نصاب رو معلوم کنه لذا فرعی حساب کنیم پس اون تعبیر فرعی میتوانیم بگیم که در واقع قواعد فرعی بعضی موقع چه کار میکنن نیان یه مقدار اون بیان رو فقط جزئیش نمی کنه مصداق تعبیر نمی کنه بلکه یه مقدار میتوانیم چه کار بکنه بیا نصاب بده نصاب برای اینکه اصلا چه چیزی خلاصه بیانگیر همون مورد اصلی هست در واقع صرف اگر کلی و جزی میخواسته میگفتیم تطبیقی یا مشکلش این بود که در واقع مفهوم مشکل داشت یه مفهومی ما داشتیم که با می برد بار سرا خود اما مهم در واقع جزئی سازی جزئی بودن و مستاقی بودن یک مورد معنای خاصی داشت خب ما رو دوچاره مشکل می کرد اما یه مشکل دیگه اینی که ما دنبال چی هستیم این که اون معنای عام رو بیاییم اون معنی که در واقع بر جسر رو بیام برش نصاب درست بکنیم مفهوم عام اهم و مهم نیازمند شاخص هایی هستند که در واقع مفهوم مثلا بگیم تقاعده کلی اهم و مهم اون رو نمی رسانه. در واقع ما نیاز به نصاب داریم این نصاب رو اگر تحبیر ما چیز به کار ببریم قاعده اصلی ببریم میتوانه در اون مبهم بودنش تاکید بکنه نیازمند من به شاخصه بودن رو بیان بکنه لذا مفهوم در واقع قاعده کلی که تو اون قبلی بود نگیم بگیم قاعده اصلی ترجیح اهم بر مهم در واقع این شاخصها رو بیان نمی‌کنه بلکه چکار میکنه؟ بلکه ارجام میده به مفاهیم به قواعد دیگه، به قواعد فرعی ارجام میده. از این جهت خلاصه این تعبیر بهتره. بله خب تو این مساق اینجا مشخصه. وقتی میگیم قاعده اک تقدیم اکبرالمصلحتین اکبرو در واقع در مفاهمی ماننده اکبر از غر اعظم مفاهم در واقع بگیم کمی ماننده اینها اینها میتوانه بیانگر باشه البته احمم احمم یه جنبه مقایسه ای داره ولی میخوام ارز کنم که مرادم اینه که این مقابلی بهتر در واقع به این شاخص ها اشاره می کنند لذا از جنبه فنی میشه اینها را قواعده فرعی حساب کنیم که برای اینکه که در واقع قواعد فرعی می توانند شاخص هایی برای در واقع روشن کردن مفهوم کل... نسبتا اه... کلان اینجا حالا کلان میخواهم میکرم بیانه کلی نگیریم نسب... مفهوم نسبتا کلان اهم و مهم اه... به کار می آیم اه... در هم اه... خود مفهومش هم خود قواعد این کار رو خواهند کرد خب لذا ما اینجا این قواعد فرعی رو مطرح کردیم مثل قواعد جز اون سیاد تعبیری به کار نباریم پس اصل خلاصه ارز هم چی بود؟ معمولاً در روش بررسی ما میتوانیم بگیم می هر قواعده سیاد تعبیری داره هایی که این قواعده تعبیرش تفاوت داره ولی همون محتوی رو بیان میکنه خب اما ما در واقع تفاوت در واقع مفهوم سیاق تعبیری با مفهوم قواعد فرعی یا قواعد روشنش کنیم به این معناکه قواعد فرعی توان متفاوت باشه سیاق تعبیری برای هر قواعده میتوانه در واقع سیاق تعبیری خاص خودش رو داشته باشه اینا تفاوتشون فقط در تعبیره اما قواعد فرعی صرفا تفاوت در تعبیر و واژه ندارند لذا باید اینها رو خلاصه متمایز کساب کنیم تفاوت سیاق تعبیری رو از قواعد فرعی بدانیم خب اگر دلز ما بعضیاش رو که در کتاب‌های به ویژه عمدتا تو فضای سنی اینا رو شبیه هم به کار می‌می‌برن ما متفاوت گرفتیم در واقع بر این اساس ما اینها رو جدا کردیم تا بتوانیم تمایز رو بفهمیم لذا این تمایز می توانیم در واقع مانع از تقلید برخی از قبائد فرعی به سیاق تعبیری برخی از خلاصه قبائد خاص بشه ما جلو تقلیر رو بخوای بگیریم بگیم آقا اگر تعبیر فقط تعبیر خلاصه اگر از تعبیر فر تفاوت داره صرف تفاوت در تعبیر ما در واقع مختزی قاعده مستقل بودن نیست بلکه صرفا خلاصه سیغه تعبیری جدیدی ایجاد میشه. خب اما برعکس برخ... خلاصه برخی قواعد برخی قوائد صرفا سیغه تعبیری نیستن بلکه چی هستند بلکه اینها در واقع قاعده مستقل اصلی یا فرعی می توانند باشند مثلا بعضش رو از هم جدا بکنیم خب ما این نتیجه رو که می‌خوایم داشته باشیم در اصل داریم یک مروری میکنیم که این قواعدی که ما لیست کردیم یه جاهای مشابهند اما دوستان این تشابه رو فراتر از تشابه در نظر بگیرند چرا چون بعضی از این قواعد فرعی هستن، قواعد مستقل هستن و ولو اینکه فرعی برای یه قاعده اصلی باشن با اون در ارتباط باشن پس ما اینا که مرور کردیم یه تعبیر چی بود در دو تعبیر عام بود الجمع بین المسلتان اولا من ابطال احدهم این قاعده در واقع ناظر به خود قاعده بود در واقع خودش قاعده پیشا قاعده بود در واقع این متفاوته حالا این از بحث خارجه در واقع سبقه خاصی داشت با این کار نداریم داشت نسبت خلاصه به برشت پیشا اعمال عمل بود در واقع داشتش می که شما اصلا چگونه اقدام بکن جمع بکن یا تصاوی تصاوی مسلحت اگر بود تغییره اما اگر اینها یکیش بیشتر بود اولویت داشت اهمیت داشت شما رو مقدم کن خب این جمع یعنی که دیگه شما نباید یه مسئله رو بذاره کنار اگر جا داره ولی خلاصه اگر جا نداره اون یه معقوله دیگه است اگر چاره نیست شما برود واقعا اگر تزاهم باقیست است شما یکیشو رو انتخاب کن اینجا که میگه از جنبه نرمثلتن اولام اطلاعهد ما در واقع این رو از این, تعب... از این محظر ما گفتیم پیشا عمل یا پیشا قاعده که در واقع این قاعده در واقع بیانگر امکان فرار از تضاهمه اما در حالی که بحث در تزاهم مربوطه به خلاصه فرض به فرض تزاهمه حالا اینجا گفتیم پیشا عمل یعنی پیشا عمل مربوط به تزاهم فرض تزاهم پیشا قاعده تزاهم خب این که میگه جمع کن یعنی چی یعنی تزاهم نیست خب این یه بحث دیگه است. اما این تعاویر دیگه که ما عرض کردیم باید چیکار کنیم اینها رو جمع کنیم لابدیت تقدیم الاجب علال واجب این با لسان حکمیه با لسان مسلحت نیست ولی برای محتوش مشابهه تقدیم احمل مسلحته خب این کلیه اقوال مسلحتن یه مقداری سابقه در واقع شاخصه ای پیدا میکنه کمی که عرض می کردیم مرادمون این بود حالت شاخصه ای سبقه شاخصه ای یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا احمل مسلحتن کدامه؟ خب یه شاخصه بده دست ما که اهم کدامه؟ اینجا میگیم اقوال مسلحتن مگر اینکه اون عقوا رو در واقع یه مقداری کشش داره در واقع مفهوم عقوا میتونه هم معادلی برای هم به کار بده هم میتونه در واقع یه مقدار به اون ها نزدیک بشه و هم در واقع به خاطر داشتن و برخورداری از جنبه کمی خاص خود در واقع سبقه شاخصه ای داشته باشه خب حالا اینجا دیگه بستگی به تحبیر داره ولی تحبیر اکبر و اعظم و نفعن و اینها رو ما خلاصه برای اکثر و نفعن رو جدا جدا بررسی کردیم مورد تعمال قرار دادیم گفتیم که هر یه ویژگی هایی داره می توانیم به اونها توجه بکنیم بعضی موقع هم که برعکس عرض کردیم به کار میره خب این اواخر بس یه تعدیل دیگه هم یه قاعده دیگه هم به کار بردیم تقدیم مسلحت دائمی بر مسلحت موقت این هم یه اشاره کردیم خب این هم در واقع یه جوری حالت چی داره کمی خاص داره درست کمیه ولی به شاخص بودن نزدیکه در واقع ما لا به طور زمنی داریم چی رو به کار میبریم ما آخو بعضی قواعد کردنه یه جوری حالت معیاریت داره و قوائد مثلا اون حالت کلام بودن و بعد بگیم میار بودن داره راه نماست میگه این کارو بکن اما خود اون یه قایده کل اصلیه اما اون قایده اصلی بخواد تطبیق بشه ممکنه یه جایی نیاز به شاخصه داره شفافیت حاصل بشه برای شناخت مساده وقتا شناخت موارد ما به شاخصهای جزئی نیاز داریم خب وقتی میگه تقدیم مسلحت دائمی بر مسلحت موقت این قاعده چی میگه؟ اولا این قاعده به مقایسه و موازنه دو مسلحت خلاصه نظر داره اما حیث مقایسه چیه؟ در این مورد در واقع معیار کمی کمی و میزان دوام مسلحت مورد توجه قرار گرفته اولا هم به هر دو مسلحت از اون طرف در این قاعده فرعی شما با کمیت کار دارید خب این محتوای روشنه اینه اما آیا فقط می توانیم یه تعبیر کلی مو عرض کنیم یه سری موارد رو ما می توانیم بگیم در واقع از حیث زمانی معایسته در واقع مساله بر اساس معیار زمان این یه موردشه یه مورد میتوانه این باشه اما یه مورد دیگه هم میتوانه این باشه که خود زمانش کی باشه شما میتوانید بگی که زمان یک مصلحت اهمیت خاص خودش رو داره خب یه جایی در واقع شما می مصلحت رو بررسی می کنید که این کم اون زیاده خب این یک میار شد خب یه در واقع خود زمانم می توانیم بررسی کنیم من یک مثال عرفی بزنم شاید قبلا هم اشاره کردم به مناسبتی در واقع پس به خود اصل نکته اینه که خود ایار زمان ببخشید پاتیم من خالی شد لا لا